علی آزاد روی خط تلفن داریم به طور مستقیم. ایشون در شهر کوپنایک زندگی میکنن. یکی از فعالین سیاسی هستن و همینطور در رابطه با تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی در شهر کوپنایک به یکی از برگزارکنندگان های این تظاهرات هستن. آقای علی آزاد سلام و صبح بخیر میگن در شهر کپنهاگ من هم به شما و شنوندگان شما درود و سلام میفرستم امیدوارم که روز روزهای خوبی داشته باشید به طور خلاصه اول از شهر شما شروع میکنم کپنهاگ که برنامه بدوز امروز مقابل سفارتی جمهوری اسلامی چی است و کی شروع میشه و انگیزه اصلی این تزارات در شهر شما است؟ بعد ما امروز در کوپناک ساعت دو بعد از تا چهار مقابل سفارت رژیم ایران در کوپناک تزاراتی رو داریم و این تظاهرات داشت توضیح بدم که اولاً یه چیز سراسری حرکت سراسری هست فقط در کوب نیست خوشبختانه در اوساک هم هست مثلا به اضافه اینکه در بسیاری از کشورها و شهرهای آمریکا این تظاهرات برگزار میشه یعنی یک حرکت سراسری هست به خاطر اینکه اول این هفته یا ویکندی هست که این مسئله به فرصت و امکان زیادیده تا بتونم مردم که یه دیریار در این حرکت سراسی شرکتم از این نظر این حرکت حرکت سراسری هست ما من عنوان به و انگول کمیته دفاع زندانیان سیاسی در این انتظار را شرکت میکنه و این شرکت این بهتظات مثل گروه ها و احزاب مختلفی در شرکت دارند و دغتان گویا اعضا به چپ و سوشی دشت و, و هستند و در کنار اون به علاوه ت ای هستند از جمله تاجران ایرانی هستند که به صورت متشکل قد و سازمان یافته در این فردا شرکت میکنن در صورت هدف ما این هست که داخل ایران از اعتراضات داخل ایران حمایت پشتیبانی بکنیم و ما هم همراه مردم ایران فریاد بزنیم که ما هم در کنار هم شما هستیم و ما هم با هم هستیم یعنی هیچ چیزی جدایازه میکنه ما را از مردم ما و اعتراضات مردم ما ما در کنار و مردم هستیم ما امکانی رو نداشتیم که در تزارات در داخل ایران شرکت بکنیم ما بخشی تبیهان ایرانی هستیم. در نتیجه قلبمون با اون و به این ندای همه با هم هستیم ما هم به اون ندا پاسخ میدهیم در رابطه با ایران اشاره کردیم تزاراتی که اخیرا شروع شد روز پنجشنبه هفته دیما شروع شد در رابطه با شکل جنبش کنونی مردم ایران که از روز پنجشنبه در واقع میشه گفت که فراگیر شد و در شهرهای کوچکی که تا حال تزاراتی بعد از انقلاب صورت نگرفته بود در اونجا هم تزارات برقرار شد ولی در رابطه با این جنبش نوین نوی و نو مردم ایران نظر شما چی است؟ بعد شما به درست اشاره کردیم که تزارات از مشهد با به صلاح به دفن گرامی بیکاری حساب فرشا همه این چیزایی که در زندگی روزمره در ایران سال‌هاست که همویشه شده شروع شده و به درستی اشاره دارید میکنیم که بیش از 110 شهر کوشک و بزرگ در ایران به اصطلاح بین کذا اروپایی‌هاست و در اینکه این شکل جنبش سراسری اعتراض سراسری در واقع و در قیام 67 اساسا چنین چیزی وجود نداشت از این نظر این نقطه قدرت این جنبش هست که به شکل سراسری هست و در نتیجه امکان سرکوب و امکان فشار و امکان بسنا تمرکز نیوای سرکوبگر در یک نقطه نیست و این خودش بزرگترین چالشی هست که به صدارش مواجه هست و به خاطر هم سعی کرده که به شکل سال هشتاد مثلا وارد نشه خوب طبیعی هست که سرکوبگری ها و دستگیری ها و کشتار بسیار خشن هستیم اعلام میکنن که چیز برخوری بار با نیست ده ها نفر در این تضارب کشته شدن و بیش از شاید دو هزار, هزار نفر هزار دستگیر شدن بنابرای اطلافات و خودشون چرای مختلفی رو بدان اعلام میکنن بالای دو هزار, هزار نفر هست به خصوص این کشی دستگیر. از این دستگیری ها به سلام روحان این دستگیر ها پیشگیر یا نمیدونم به خاطر کنترل بسیار فعالین چپ به خصوص تانشیان چاپ و آزادی ها و فعالین جامعه مدنی رو که نیدونستن نفوزی رو دردارن در درونه در فرد و در درونه بسینا شهر و محید زندگی و کار خودشون اینها رو داشتیم کردن که خودشون هم الان هم اکراف که این دستگیر ها بخشی رو گسترده هستند در نتیجه این جوخش با همه این سرکوب و با همه این خشونت به سلاح پایان دیافته نیست و هر شب از. علا رب اینکه هم رژیم و برخی از رسانه های به سلاح خارجی طوری بانمود میکنن که دیگه پایان شد و تموم شد و به رقره اقراض بود دادن و رفتن خونه اینجوری نیست همین دیشم فضارات زیادی بوده در سنندج، در معاباد، در بوکان، در تهران، در کرج و در تبریز این ها چیز هست به خاطر اینکه که الان مسئله مسدود کردن به صلاح کنال های تلگرام و به ذاتی هم سورد کردن اینترنت و اینها ها این نوع خبر خوب سخت است که کمتر هست اما این به این نیست که اینجور بهش تموم شده او رغم این که این فشار هست در ایران هست مثلا به یه فیلم میگه که پیشاپ از تعریض نشون میده اصطلاح مردم رودروی با وایس دادن رودروی رو بسیج وایس دادن بعضی از شهرها حتی به مقبره شفا بسیج حمله کردن یا یعنی دیگه این جنبش هنوز توانیه داره ولی خب بله مسئله سر خوب در سمای بهشلو کوشش و بر عود بسفن مردم طبیعیه که افتوخی داره و این چیزی هست که جاری نگرانی هست و این نگرانی رو به صدا نه با به داختر و نه اینکه چیز دقیقی ملدونی در خیامان هستان رو تنها بزرشتن اینها نیست بلکه میکانیزم رو میخواد که این به سلا حرکت تطویل بکنه اون هم اعتراضات سراسری هست, هست. چی... سریع هست. و اعتراضات سراسری هست و گذشتن از این که چیه یه به که هاشیهی از راهورات میشه بسیار هاشیه و بسیار به سلا تمرنگ هست. اما حتی ممکن هست مشکوب باشه ولی با همه اینا ها سبب برداری رژیم هست سبب این خواهد شد که مردم تصوری داشته باشند که باز دوباره مثل سال 50 و 6 کشورهای آمریکایی یا ویستی شو می دونن انگلیس،, انگلیس انگلیس انگلیس دیگران مشغولی این هستن که مردم را سفر این خواستان و مطالبات خودشون بکنن و در بالا سازش هایی صورت بگیره و دهات های یا شخصیت ها یا جریادات مرتجه این رو به قدرت برسونن و مثل تجربه سال 50-56 مرتجه تن از شاه رو به قدرت برسونن در نتیجه اینها ها وزی سبب نگرانی مردم هست و طبیعی هست خصوص این یک نصف این ها رو تجربه کرده و سالهای سال بصلا تاوان اون تجربه سخت بود از برگاه از این نظر این ها چیزایی هست که اناره همونه که چند تا نیست و مردم میدونن که بصلا این مساعدی هستن که میشه براحتی بصلا اینا رو کنار زد و جمعهش وقتی که را بیگان بشه و آزادیایی بیشتره به دست بیاره یکی پاسخ میده همه اینا سبب خواهد شد که رفته دفته به این جمعش به سراز آمنه وسیطن و از سالت این جمعش طوبه این در رابطه با دانشیان بازداشتی صحبت کرده یکی نماهنده مجلس شورای اسلامی هم دیروز اعلام کرد آمار رسمی که خودشون ادعا کردن حدود نوت دانشجو بازداشت اما یکی از مقامای عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی هم چند روز پیش اعلام کرد که اکثر دستگیر شدگان جوانان زیر 25 سال هستند. می بپرسم انگیزه اصلی شرکت وسیع و گسترده جوانان در این تظاهرات چی هست؟ خب جوانم طبیعی هست شروع و شور بیشتری دارند از بسلا امکانات سریع بسلا فیزیکی و زبانی در خوردار هستن که میتونن خودشون رو سریع ترز مناقب مختلف درسونن به از امکانات این و اینا خیلیست به سلا و درستن میکنون استباده بکنند و در کنار این فشار ها و هایی که هست و جوان ها بسیار هست بیایندهی در این جوان خیلی مهمی هست ساعت خودکشی هایی که توی همین چند ماه های اخیر که منتشر شده آره همه این ها سب نمیشه بحشتناک به خصوص برای جوانان فشار توی مدرسه فشار توی کار فشار توی حتی درس و چیز هست دوباره اون سیستمای مدتبی آقوندی دوباره برگشت و حتی بر از مدارس مشاهد کتک باری های به فیزیکی بودیم معلم ها سختیدی هایی بیادیده میکنند اجاه میکنون روهای اجواری میبرن که بارها بارها مشاهدی بودیم که تو بعد از سالهای های سال دو در در بعد از پایان جنگ همچنان اون جنگ ارتجاری در نیان دانش آموزان دکتر سند، جوانان، دانه قربانی میگیره مجموعی این کشورها خب که برای به صدا جوانان بیشتر هست و تجربه این که جنگشه های به صدا در کشورهای آزادی آزاد نیست تشکل نیست. آزادی اعتراض به سلا مسال مدامیز نیست. طبیعی هست که جنبش های دانشوی و جنبش های دانش آمونزی به سلا خیلی سریع میگیره و خیلی سریع رادیکال میشه و پیش میدن. همین این رو به در کشورهای دیگه بوده ولی خب خود ما آن نسلی بودیم که در سالهای پنجاه و شیش و پنجاه هفت این پنج ما اون موقع در همین سن سال بودیم که چهید شراکی به وجود اومده در نتیجه این خدا تبره طریقی هست اما در مورد دستگیری که صورت گرفته از دانشوار و دانش آموزان حتی دانش آموزان این گسترمه هست و اونا به در درست فهمیدن بوجود که بوجودی کجایی جامعه رو که کدیم دخشی از به صلاح فعالین رو تا این مسئله به اصطلاح اینا بودیات بکنن الان کمیته‌ای از خان ماده‌ای که به اصطلاح دانشجو دانش آموزا میتره، دستگیرشون دستگیر شده، بازداشت شده، دستگیر شده، فشار سنگینی رو به جمهوری اسلامی و بردن به مجلس نماینده‌ها و بردن جلوی در اوین انجام دادن و خواهم این هست که چی شماش هر کجا بودی برای چنمی نگا حتی قبل از این مسئله که تظاهرات داخل تهران سرایت بکنه و گرفتن حتی رژیم خودش هم میگید که این چیز اقدام دسته پیشگیرانه پیش بوده یعنی این مسئله مسئله جدی هست که بایستی بخشی از مطالبهات از آن معلجا باشه بخشی از مطالبهات معتبرین مطالب باشه که در زمانیان سیاسی، سیاسی، در اخیر به هزاران برسه، که مردم به اینکه جمهوری اسلامی با سیاسی خصوص با به خیابانی رو بودان عصیدات گروهار رو خودش حساب میکنه و هر که خاص بودان افتاد میکنه قبل آمای زردانی در رابطه با سیاست خارجی جمهوری اسلامی که از همون آغاز سعی کرد که کشورهای مسلمان نشین رو تحریک بکنه و همینطور اخیران یه اشارهایی که داده بودن از طرف مردم دخالت های در لبنان، سوریه، ارائه یمن صورت گرفته و حتی در شعاره هست که کمک های اقتصادی سیاسی به این کشور ها می گفته بودن که نه قزه نه لبنان جانم فدای ایران بعد در این رابطه چرا جمهوری اسلامی داره این کارا رو میکنه و کشور رو به فنا می به جمهوری اسلامی همواره در ها و جنگ هست اصلا به درداره دیگه جمهوری اسلامی حکومت جنگ سالاران است بدون جنگ، بدون قندیزی، بدون کشتار امرادش پیشنیده ای که اینجا هست مردم به درست و واقع میدونن که بخش وسیع از سرمایه مادی معنوی جامعه به سرا صرف این سیاست های جنگ افروزانه هست ست هزار ایرانی در طول این مدت در جبه مختلف در داخل خارج جای مختلف چیه کشته شدن اینا واقعیت اجتماعی هست که مردم نمیتونن اینها نادیده بگیرن میدینن و ملیان ها درآمد کشور هست که صرف این سیاست های جنگی شده این سیاست های جنگی به صلاح کمکی رو به لبنان یا سوریه یا فلسطین میشه نه برای مردم آورون شده نه برای اون مردم بیمارستان شده نه برای اون مردم خانه رو کاشانه شده بلکه سبب ویرانی اونجا شده یعنی یک مسئله اگر که مثلا طرح کمک های اقتصادی یا بشردوستانه بود برای سوریه خب می رفتند آره مثلا چرا به ما به مردم خودش دریغ میکنه حتی این نیست بلکه اونجا تو اون خمکاره هست که ای شهر و بیمارستان و همه را چی به انتخاب و سیاه کشوند تلی از سوریه کلی از خاکستان و میرانگی هست ربنام همینجور چند بار سبب شغل زدن جامعه شهرهای بزرگ ربنام شده در فلسطین همینجور به سبب اختلاف دوگانگی دو دستگیست اونجا جنگ نیابتی ایران و عربستان صحبی هست که بخش وسیعی از این امکانات به رسحفه این میشه و مردم فلسطین، مردم سوریه، مردم لبنان، علایه که این سیاست هستن در سوریه بیش از هر چی بیه انقدر دیگه در ایران در سوریه مورد نفرت در داخل ایران نیست مردم سوریه با نفرت از ایران ده ده ده سبب کشتار و سبب ویرانی و سبب دستگیگی های چیز شدن یا در همچنو در لبنان همین الان مثلا فرض کنید که کاریکاتور هایی که از لبنان کشیدن در مقرد مسار سرکوب هم بستگی هایی که مردم دارن توی نتاق به صلاح تویی چوینده دارن میکنن نشون بده. در فلسطین بارها با شده که اینها فقط برای مناقع خودشون و برای اختلاف انداخت هست در واقع همین سیاست ها شده که در فلسطین دو دولت بدون این هیچ پایدایی یا بدون هیچ چیز رسمی داشتن بطرق اومده هجه شدن فلسطین به غزا رام الله در نتیجه این سیاست ها بود در نتیجه برای مردم این مسئله روشن هست من قیل نمی کنم در این مسئله مسئله بسیار برورده نجات برستاره به طبیعی هست که شعار میتونه بسیار روشن‌تر بشه میتونه شمکافتر صحبت بطره همونجوری که در طول این مسئله اران شعار ها کمتر به مسئله غزه اشاره میشه مسئله لبنان و سوریه هست ولی به صورت این به اعتراض همه ای نیروهای سیاسی مترضی بوده، همه بردم بوده بود همه جنبش‌های های اجتماعی که در ایران بوده که شما این پول این امکاناتو کجا دارید و برای چه جور جز فضل و بدبختی و کشتار و برای مردم سوریه برای مردم یمن جایی نبوده که جمهوری اسلامی برای آبادانی برای جنگ و بوده یا به این دلائق به نظر ما هم به نمایستین چهی بشه بیشه و ما هم در کنار مردم سوریه در کنار مردم لبنان در کنار مردم مثلا خلیستین میگیم که دست جمهوری اسلامی دید دست جنگ سالان دست کناریت کاران از سرده بشت و این کشور ها دو دستی باشه بهتونند مردم خودشو پستیم وقتشو رو میدونم که امروز فعالیت کارتون زیاد هست ولی ما زیاد مزامه شما نمیشیم در خاتمه اگر صحبتی ناتمومی هست مطرح کنین که از خدمتون مخصوشیم من به شما خصه نباشید میگم به خصوص این که به عزیزانی هموطنی هم و مردم آزاده ای که امروز هم در دامار در کوبه ها هم در آگوست به صدا در غال این مسئله احساس مسئولیت کردن و مردم ایران را تنها نخواهند گذاشت و همدلی خودشون همراهی خودشون را اعلام میکنم سمیمانه به همه شما درود میکرستم و برای تن آرزوی خوب و خوشی را دارم و که بتونیم باز هم به شکل مستقیم تری این دوتا تزارات رو به همدوی رفت بدیم و اگر امکانی باشید از امروز میتونید شکل مستقیم در تماس هم باشید و برای همدیگر پیام همبستگی و شادمانی روید